بسم الله الرحمن الرحیم خداوند به اندازه مهربان نهایت بارشد ستایش خدای راست را که آسمان ها و زنین را فرید و تاریکی و روشنایی را پیدا کرد با این هم کافران و پروردگار خیش دیگران را مسابق را بیدهند او ذات است که شما را از گل آفرید، سپس معاید را برای شما تعیین کرد، و معاید تعین شده نزد اوست، با این هم شما شک می وزید. اوست خداوند در آسمانها و در زمین، پنهان شما و آشکار شما را می داند، و نیز چیزی را که شما کسب می کنید می داند. هیچ آیه از آیه های پروردگار به ایشان نیامد، مگر آنکه از آن روی گردان بودند، و نیز سخن حق یعنی قرآن را که به ایشان آمد پند داشتند. اما بزرودی با سوی ایشان خبری چیزهایی که آن را مورد تمسخر قرار می دادن می آید. یا نمی بینند چه نسلهایی را پیش از ایشان هلاک کردیم ایشان را در زمین طور استوار ساختیم که شما را به آن قسم استوار نگردانیدیم بر ایشان بارانهای پی اپی را از آسمان فرو ریختاندیم و برایشان شان سرشاری دادیم که در زیر آبادی هایشان جریان داشت اما با این هم آنها را به سبب گناهانشان هلاک ساختیم و بعد از ایشان نسلی دیگری را به میان آوردیم اگر بر تو نوشتهی را بر که فرو می فرستادیم و آن را با دستهای خود لمس می کردند، باز هم یقینا کافران می گفتند این نیست مگر جادوی آشکارا و گفتند چرا به او فرشتهی نازل نشده است و اگر فرشتهی را می فرستادیم موضوع به با یک بارگی حلو فصل می شد و برایشان مطلقی دادن نمی شود و اگر سرشتهی را پیانبر می ساختیم او را به قسم انسان می و بیگمان بر ایشان مشتبه می ساختیم موضوعی را که اکنون ایشان آن را مشتبه می سازند، از پیانبران پیش از تو نیز مورد تمسخر قرار گرفتن ولی سر انجام آنچه را مورد تمسخور قرار می ایشان را احاو کرد بگو در زمین گردش کنید تا ببینید که آخر کار کسانی که حق را تکذیب کردن چی بود؟ بگو چه در آسمان ها و در زمین است از آن کیست؟ بگو از آن خداست او بخیشتند رحمت را بنویشتیان لازم گردانید بی شک او واکن شما را به روز قیامت جمع می کند که در آن هیچ شکل نیست آن هایی که خود را زیان من ساخته اند پس همان که ایمان نمی آر. هر آنچه در شب و روز قرار دارد همه از آن اوست و هم اوست چنوا و دانا بگو آیا کسی دیگر را جز خدا آفریننده ننده از و زمین ها می در حالی که اوست که روزی می و به او روزی دادن نمی شود بگو به من حکم شده تا نخستین کسی باشم که مسلمان شده است و من گفته شده که هرگز در زمره مشکن نباشد بگو اگر من نیز پروردگار خود را نافرمانی کنم واقعا از عذاب روز بزرگ می در آن روز اگر از عذاب کسی صرف نظر می شود در واقع خداوند به او مرحمت کرده است و این است رستگاری آشکارا اگر خداوند به تو زیانی برساند هیچ کس غیر از او آن را دفع کردن نمی تواند و اگر به تو خیری رساند پس او بر همه چیزها قدرت دارد اوست بر بندگان خود قاهر یعنی سرو شکننده و هم اوست با حکمت و آگاه بگو کیست که از همه در گواهی بزرگتر است بگو خداوند در بین من و شما گواه است و این قرآن به من وحی شده است تا آن شما و همه آنانی را که قرآن به ایشان می رسد، بیم بدهم آیا واقعا شما گواهی می دهید بر اینکه با خدا معبودانی دیگری هم وجود دارند؟ بگو من گواهی نمی دهم، ده بگو حتی که او خداوند یکتاست و از آنچه شریف می آورید واقعا بیزار؟ کسانی که با ایشان که را دادیم او را توری می شناسند که فرزندان خود را می شناسند، آنهایی که با خود زیان بسانده پس ایشان ایمان نمی بار. و کی ستمگارتر از کسی که بر خدا دروغی بر بسته یا آیات او را تکذیب کرده است بیگمان ستمگاران دستگار نمیشوند و آن روز را یاد کن که همه ایشان را جمع کنیم سپس به آنانی که شریک آورده بودند میگوییم کجا شریک هایی که شما گمان داشتید. سپس حیله ایشان جز این نیست که بگویند و خدای پروردگار ما سوگند که هرگز مشرک نبودید ببین چگونه به خود دروغ گفتند اما دروغی را که بر بودند از ایشان گم شد یعنی ایشان را در خلا گذاشت و از ایشان کسانی اند که وانمود می کنند که به تو گوش میدهند، اما ما بردلهایشان های انداختیم که آن را نمی فهمند و در گوشهایشان بیرانی نهادیم و اگر هر موجزه را هم بینند و آن ایمان نمی آرند تا چون نزد تو بیایند با تو منازع می کنند کافران می نیست این مگر افسانه های پیشنیان دیگران آن باز می دارند و خودشان نیز از آن دوری می گذینند. اما ایشان جز خشتن کسی را تفاق نمی کنند ولی درک نمی اماید و اگر تو ایشان را هنگامی که در آتش قرار داده می شوند ببینی پس می گویند ای کاش باز گردانی می شدیم که آیات پروردگار خود را تکذیب نمی و از مؤمنان می شدی بلکه هر را ایشان پیش از این پنهان می در آن روز برایشان آشکار شد و اگر ایشان با دنیا باز گردانی شوند بدون شک با سوی آنچه از آن منع شده بودند باز میگردند و واکن ایشان دروغ و گفتند جون زندگی ما در این دنیا چیزی دیگری نیست و ما بار دیگر بر انگیختن نمیشیم. اگر ایشان را هنگامی که در پیشگاه عدالت پروردگار خیش استاده کرده شوند بیبینی و خداوند به ایشان بگوید آیا این رویداد حق نیست؟ در جواب میگویند واقعا این رویداد حق است و با پروردگار ما قسم، خداوند میگوید پس را بچشید به سباب آن کافر بودید واقعند کسانی که رفای خدا را دروغ پنداشتند زیان کارن. تا چون ناگهان قیامت بر ایشان بیاید میگوین وا حسرت را بر ما که در آن کوتاهی کردیم در حالی که آنها بار گناهان خیش را به دوش می کشند چی بد است باری که ایشان حمل می کنند و نیز زندگانی دنیا جز له و راید و بگمان سرای آخرت برای مردم با تقوی بهتر است آیا پس شما درک نمی کنید؟ ما واقعا می دانیم سخنان ایشان تو را این اندوگین می سازد در واقع شما را تکذیب نمی کنند بلکه این ستمگاران از آیات خداوند انکار می وزند بیگمان پیش از تو نیز پیانبران تکذیب شدند پس در برابر هر آنچه تکذیب و عذیت می شدن، صبر کردند تا نصرت ما به ایشان رسید برای کلیمات خداوند تبدیل کنندهای نیست واکن به تو از احوال آن پیانبران رسیده است در صورتی که اعراض ایشان بر تو گران تمام می شود پس اگر بتوانی نقبی در زمین یا نردبانی در آسمان بجویی. و به ایشان موجزه می بیاوند باز هم ایمان نمی آوند اگر خداوند می خواست ایشان را برای جمع می پس تو از زنگه جاهلان نباش تنها کسانی دعوت تو را اجابت می کنند که گوش شنوار دارند ولی مردگان یعنی کسانی که دعوت تو را اجابت نمی کنند خداوند ایشان بر می را برمی و سپس به سوی او می ایشانی چرا بر او محمد نشانه از جانب پروردگارش فرو فرستازه نشد؟ بگو بیبو بگمان خداوند قدرت دارد که نشانه فرو فرستد اما سر ایشان نمیداند هیچ در زمین نیست و نپرندهی که با بالهای خود پرواز کند مگر اینکه که هستند مانند شما ما در کتاب چیزی را فروت داشت نکردهید و سپس ایشان همه سوی پروردگار خود تحشر ایشاند آنانی که آیات ما را تکذیب کردن کر و گم هستند در عمق تاریکی ها هر که را خداوند بخواهد گمراه بگرداند و هر کی را بخواهد راست قرار میدهد بگو آیا راهی با خود اندیشیدهید اگر به شما عذاب خداوند بیاید یا بیا قیامت به سر وقت شما برسد آیا جد خدا دیگری را فرا میخانید اگر روش گویید حقیقت را بیان کنید بلکه خواست او را فرامی خانید پس آن مسیبتی را که برای دفع آن دعا می کنید اگر بخواهد دفع می کند و چیزی را که شریک می آوردید فراموش می کند حتی که برای بسیاری از اومدهای پیش از تو پیامبران فرستادید پس ایشان را به سختی ها و رنجه گرفتار ساختید تا باشد که ایشان با قبول حق و شود، پس چرا در هنگامی که عذاب به ایشان آمد تسلیم نشدند مگر دلهایشان سخت گردید و شیطان برای آنها اعمالشان را زیبا داد که به حق تسلیم نشدند پس چون آنچهرا به ایشان پند داده شده بود فراموش کردند و ایشان به های همه چیزها را گشودیم تا اینکه به چیزهایی که داده شده بودند شارمان گشتند ایشان را ناگهان گرفتار کردیم پس ایشان به با یک ناومید شدند پس بیخی مردم ستمگار بریده شد و ستایش خدای پروردگار جهانیان راست بگو آیا گاه اندیشیده اگر خداوند شنوایی و بینایی شما را بگیرد و بر دلهای شما مهر نهد کیست آن معبودی به جز خدای یگانه که آنها را به با شما باز دهد ببین و ما آیتها را بیان میکنیم ولی باز هم ایشان رو می گردانه. بگو شما خود ببینی اگر عذاب خداوند و شما ناگهان یا آشکار بیاید آیا با غیر از گروه ستمگار کسی دیگری حلاق خواهد شد؟ ما پیامبران را نفرستادیم مگر به حیث بشارت دهنده و بین دهنده پس کسانی که ایمان آوردن و اصلاح شدن بر ایشان و است و نه هم ایشان اندورین می شودیم و کسانی که آیات ما را تکذیب کردن به ایشان عذاب می رسد. از سبب اینکه فسق فسک و زیده بگو من با شما نمی گویم که نزد من خزینه خداوند است، و نه هم غیب را می دانم و نه هم با شما می گویم من فرشته ام، من پیروی نمی کنم مگر آن چیزی را که به من وحی شده هست بگو آیا نا بینا و بینا براقر پنداشتا می شون پس با این هم آیا فکر نمی به وسیله کسانی را بین بده که می که با حضور پروردگار خیش هرش می شوند. در حالی که جز وای نه کارسازی دارند و نه هم شفاعت کنندهی تا باشد که ایشان بترسند. کسانی را که پردار و بیگاه و پروردگار خیش را می خوانند و رضای او را می طلبند دور مران. تو از جای ایشان از چیزی ای ساخته نیستی و نه هم ایشان از جای تو از چیزی ساخته می باشند مبادا که ایشان را از خود برانی و به دین ترتیب از جملۀ شد. این اینچنین بعضی را بر بعضی دیگر از کردیم تا بگویند پس آیا اینهایند کسانی که خداوند از میان ما بر ایشان فضل کرده است آیا خداوند گذاران را خوب نمی شناسد به که به آیات ما ایمان دارند چون نزی تو می پس به ایشان بگو سلام بر شما بروادگان شما بر خود دستور رحمت را نوشته است که اگر کسی از شما از روی نادانی کار بدی کرد و بعد از آن توبه نمود و اعمال خود را اصلاح کرد پس حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است به این ترتی ما آیات را به تفصیل بیان می کنیم و تا راه گنهکاران روشت شد, شد. بگو من از این باز داشته شدم که برای خداوند آنهایی را بپرستم که شما ایشان را میخواهید بگو من هوای نفس شما را پیروی نمی کنم. اگر این کار را بکنم بیگمان من گمراه شده ام و در این هنگام از زمره راه یافتگان نمی باشم بگو من بر دلیل روشنی از جانب پروردگار خیش می باشم و شما آن را تکذیب کردید آنچه را شما با شتافتدگی تقاضا می کنید نزد من نیست حکم به دست کسی دیگر جز خداوند نیست حق را بیان می کند و او بهترین فیصله کنندگان می باشد بگو اگر آنچرا شما باشید تابزدگی تا دارید نزد من می بود موضوع زودی بین ما و شما حل و فصل می شد و خداوند بسیتم گاران داناتر است و های غیب نزد اوست است که آن را کسی دیگر وجود او نمی داند و نیز آنچرا در خشکه و بحر است همه را می داند و هیچ برگی از درخت نمی افتد مگر اینکه آن را می داند و نه دانه در تاریکی های زمین و نه چیز تازه یا خشک وجود دارد مگر آنکه در کتاب واضح ثبت شده است و اوست که روح شما را در شد میگیرد و به همه چیزهایی که در روز کسب کرده اید آغاست سپس شما را باری دیگر در روز بر می تا میاد می معینی به سر آورده شد سپس بازگشت شما به سوی اوست بعد از آن شما را به حقیقت کارهایی که انجام داده اید آگاه می سازد و اوست بر بندگان خود قاهر و متسلط و او به شما فرشتگان را به حیث نگهبان می فرستد تا چون مرگ یکی شما فرا می‌رسد. فرشتگان روح او را میگیرند و ایشان هیچگاه در وظیفۀ خود کوتاهی نمیکند سپس ایشان به سوی خداوند مولای برحق خویش برگردانده می شوند هان در آن روز حکم از آن اوست و او در حساب گرفتن از همه سریعتر است بگو کیست آن که شما را از تاریکی های خوشکه و بهر نجات میدهد نگگانی که او را با تظرو و بنیتن می میخوانید و میگوید که اگر ما را از این خطرات نجات بدهد راستی ما سپاس گذاران می باشید بگو این خداست که شما را از اینها و از هر غ دیگری نجات میدهد ولی باز هم شما شک شرک میآورید بگو او قدرت دارد که بر شما از بالای سر شما یا از زیر پای شما عذاب بفرستد یا شما را به نزاه های گروهی بیا و به شما مزه ستیز یکی از شما را در برابر دیگری بچشاند ببین چگونه آیات را به آنها بیان می کنیم تا ایشان بفهمند. و قوم تو این قرآن را که حق است تکذیب کردن بگو من مسئول ایمان آوردن شما نیستم برای هر خبری می است و به زودی می داید. و هنگامی که مردمی را می بینی که در برای آیات ما و سخنان احانت آمیزی می پردازند از ایشان رو بگرداند تا با بحث دیگر بپردازند و اگر گاهی شیطان این مطلب را از خاطرت فراموش می سازد پس چون به یاد تو آمد با گروه استمگاران ننشین از عملکرد کافران بر پرهیزگاران مسئولیت آیت نمی شود اما این یاد آوری برای آن است تا ایشان متوجه شوند و از خدا بترسند آنهای را که دین خود را با بازی و بیهودگی رفتند و زندگی این دنیا ایشان را فریفته به حالشان و ایشان را به این قرآن پندی تا ما کسی را با سبب آنچه کسب کرده و تباهی به سفارت و در این صورت برای او جز خدا کافصاد و شفاعت کنندهی نیست و اگر به یواز خود در مقابل مجازاتی که برایش شعین شده هر یوازی را تدیه بده تبول نمی شود این اینها اند که با اعمال خویش خود را به تباهی سپردند ایشان را نوشیدنی آب جوشان و عذاب بحث دردناک و به سبب آنکه کافر بودند بگو آیا جز خدا چیزهایی را بخوانیم که برای ما نه رسانده می توانند و نه هم زیانی و بعد از اینکه خداوند ما را رحیاب صافت و عقب بازگردیم ماندی کسی که او را شیطان ها بدراه کرده و در روی زمین سرگردان ساخته باشند او دوستانی داشته باشد که وی را به راه راست فراختانند بگویند به سوی ما بیا بگو واکن هدایت خداوند همان است هدایت و معمور شده ام تا خود را به فروتگار جهانیان تسلیم کنید و به ما گفته شده که نمازها را به تمام و کمال برپا دارید و از خداوند بتسید و هم اوست که همه شما به سوی او حشر می و هم اوست آنکه از و زمین را به حق آفرید و روزی که بروید شو پسری شود سخن او حق است و در روزی که سور دنیده می شود پادشاهی از آن اوست او دانای غیب و آشکار است و هم اوست با حکمت و آگاه رو و, و وقتی را که ابراهیم با پدر خدا زرگ رفت، آیا بوتان را خدا میگی من به گمان تو قومت را در گمراهی آشکارا میگیم و این شنین به ابراهیم قدرت مطلقه الهی را در آسمان ها و زمین نشان دادیم و تا از اهل یکین گردد وقتی که تاریکی شب او را پوشاند ستاره ای را دید گفت این است پروردگار من اما چون آن آم ستاره از نظرش قاید شد گفت من غروب کنندگان را دوست ندارم. چون ماه را در حال ترودی گفت این است پروردگار من اما چون غروب کرد ابراهیم گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکند یقینا از قوم گمراهان میگندم پس چون آفتاب را در حال قلودید گفت این است پروردگار من این بزرگتر است اما چون غروف کرد ابراهیم گفت ای قوم من من واقعا از اینکه که شما به خداوند شریک می آرید بیزار من بیگمان به ذاتی روی آوردم که از و زمین را آفرید در ایمان خود خالصم و هرگز از مشککان نیستم و قومش به او منازعه کردند او گفت آیا با من در حالی درباره خدا منازعه می کنید که واقعا او مرا گدایت کرده است من از آن که شما به خدا شریک میارید نمی و به من زیانی نمی رساند مگر آنکه پروردگار من چیز را اراده کند علم پروردگار من همه چیز را فرا گرفته است آیا نمی نمیگیرید از چیزهای بترسم که شما آنها را با خدا شریک می و شما از اینکه به خداوند شریک آورید نمی ترسید چیزی که هیچ دلیلی در زمینه برای شما نفرستاده است آیا کدام یک از ما دو گروه به امن حق ترین اگر شما می کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به شرک نیالودند ایشانم که براستی در امنند و هم ایشانم که هدایت شدند این بود حجت ما که آن را به ابراهیم در برابر مردمش دادیم و مرتبه هر کسی را که بخواهیم درجه به درجه بلند می سازیم بیگمان پروردگار تو صاحب حکمت و دانش ما به او اسحاق و یاکوب را دادیم را هدایت کردیم و پیش از آن نوح را هدایت کردیم و از نسل او داوود سلیمان ایوب یوسف موسا و هارون را نیز هدایت کردیم و به دین ترتیب کاران را مست و زکریا ایسا یهیا و, و ایلیاس همه در زنگه سالحانه و اسماعیل، یسعا یونس و لوت نیز و همه اینها بر جهانیان فضیلت دادیم و نیز از پدرانشان و اولادشان و برادرانشان و ایشان را برگزیدیم و برای راست هدایت کردیم این است هدایت خدا هرکی از بندگان خود را که بخواهد به آن رهنمایی میکند، اگر ایشان شد می آوردند همه کارهایی که می کردند از ایشان نابود می شود. اینها کسانی اند که به آنها کتاب شریعت و پیامبری دادید اگر اینها یعنی اهل مکه معظمه قرآن مجید را تکزید کنند ما قومی را به آن میگو که از آن انکار نمی کنند آنها کسانی اند که خداوند ایشان را رهیاب ساخت. پس بروش ایشان اقتدار کن بگو در برابری این تبلیغ از شما مزده نمی طلبان این نیست مگر پندی برای جهانیان خداوند را که شایسته شان اوست قدردانی نکردند وقتی که گفتند خداوند چیزی را به انسان از ریخ وحی نترستاد است بگو پس چه کسی کتابی را نازل گردانید که موسا آن را آورد روشنایی و هدایتی برای مردم اما این شما هستید که آن را ورقها می سازید. یک تعداد از آن ورقها را آشکار و بسیاری از آن ورقها را پنهان میکنید و شما چیزی آمورتانده شد که نه شما آن را میدانیستید و نه هم پدران شما بگو خداوند آن را فروف ساده و سپس ایشان را بگذار تا به صحبت های بیهوده خود سرگرم باشد و این کتابیست که ما آن را فرو فرستادیم با برکت و تصدیق کنیده آن کتبی که پیش از آن بود تا مردم ام القرآن یعنی مکه معظمه و حوالی آن را دیم دیدی و کسانی که به آخرت ایمان دارند، به این کتاب ایمان دارند و ایشان بر نماز خیش محافظت می کنند. و کی ستمگارتر از کسی که بر خداوند رو بربندد یا بگوید برای من وحی شده است در حالی که هرگز با او چیز وحی نشده است یا کسی که بگوید من نیز مثل آنچرا خداوند فرو فرستاده است نازل میکنم اگر تو وقتی را ببینی که ستمگاران بر سکرات مرگ گرفتار میشوند و فرشتگان دست های خود را دراز کرده میگویند روح خود را بیرون در آن روز با عذاب اهانت آمیز عذا به سبب این که بر خداوند سخنان ناحق گفتید و از آیات او تکبر ورسیدید بیگمان به سوی ما به صورت انفرادی آمدید درست به همان شکلی که ما شما را باری اول آفریدیم و تمام آنچه را با شما اینایت کرده بودیم به اخر گذاشتیم با شما اکنون شفیه های شما را که میپنداشتید واکن آنها با شما در صفاعت نمی بینیم. واقعا حالا پیوند بین شما و ایشان قطع شده است و دروغی را که بربسته بودید از شما گم شده یعنی شما را در خلاو گذاشته است حقا که خداون شکافنده دانه و خسته قرما است زنده را از مرده بیرون می کند و بیرون کننده مرده از زنده است این است خدای شما بس چیگون از حق منحرف می او شکاخنده صبح هست شب را مایه آرامش و آفتاب و ماه را برای حساب وقت قرار داده است این است انداز گیری خداوند صاحب قدرت مونی و دانا و اوست که ستاره ها را برای شما علامههایی های است تا در تاریکی های خوشکه و بهر با آن رحیاب شوید حقا که ما نشانه های خود را به مردم تفسیلوار بیان کردیم که میدانند. اوست که شما را از یک شخص پیدا کرد پس برای شما قرارگاه است و وضیعت جایی بگمان نشانه ها را تفصیلوار به با مردم بیان کردیم که می فهم و اوست که از آسمان آب را فرور اخت و باز به با وسینه آن همه روی دنی ها را رویانی دید از آن سبزه رویانیدیم و از سبزه دانههای به هم پیوسته و از درخت خرمال شگوفه آن خوشه های به زمین رسیده از پروباری بیرون می آوریم و همچنان باغهای انگور و زیتون و انار را آفریدیم که در شکل رنگ و غیره مشابه و, و در مزه و بو متفاوتند و به میوه های آن ببینید چون بارآرد و با آن در این ها همه برای مردمی که ایمان دارند نشانه و با این هم کفار برای خداوند جند و شریک می آوردند در حالی که خداوند آنها را آفریده است و بنادانی با خداوند پسران و دخترانی تراشیدن منظه است خدا و برتر است از آنچه چه با او نسبت می دهند ایجادگر آسمانها و زمین است چیمونه برای او فرزنده می تواند باشد در حالی که او هرگز همسری نداشته است و همه چیز را آفریده و او به هر چیزی داناست آره این از خداوند پروردگار شما جز او معبودی نیست با فریدگار همه چیزهاست پس او را پرستش کنید و هم اوست کارساز همه چیزها. دیده ها او را درک کده نمی توانند ولی او دیده ها را درک می کند و اوست نهایت پر لطف و آگاه حقا که برای شما جانب پروردگار شما دلایلی روشن آمده سپس اگر کسی که آن را دید فایده آن برای خود او می باشد و اگر نابینا شود نیز به ضرر خود اوست. و من پاسدار اعمال شما نیستم به این ترتیب ما آیات را به شکلهای گراغون توضیح می کنیم مهم نیست که بگویند دست گرفته تا آن را به مردمی بیان کنیم که می داند آنچی را به تو از جانب پروردگارت وحش و در پیروی کن جز او معبودی نیست و از مشرکان روی برتا اگر خداوند میخواست شریک نمیآوردند، نمی آوردند ولی ما تو را پاسدار اعمال ها نگرده و نه هم تو کارسازی ایشان می کسانی <تصفيق> <تصفيق> را که مشرکان جز خدا نیایش میکنند، کنند اشنا مدهید تا مبادا ایشان از روی ستمگری و نادانی خدا را بد بگویند این ترتیب ما به هر ملت اعمالشان را آراسته جلوه دادیم و در آخر کار بازگشت همه آنها به خدایشان است و ایشان را به حقیقت آن اعمال که انجام می آگاه می سازد ایشان به شدیدترین سوگندها و خداوند قسم یاد می که اگر به ایشان هر نشانه بیاید حتما به آن ایمان می آورند بگو یقینا نشانه ها در نزد خداوند است و چی میدانید که چون نشانه ها بیاید باز هم ایمان نیاورد؟ ما و چشمانشان را از پذیرش و دیدن حق میگردانید توری که در نخست به آن ایمان نیاوردند و ایشان را در سرکشی ایشان سرگردان میگذارد حتی اگر بر ایشان فرشتگان را هم فرو می آوردیم و مردگان با ایشان سخن می گفتند و همرا گروه گروه در برابر چشمانشان حشر می کردیم باز هم ایمان نمی آوردند مگر این که خداون می خواست اما اکثر ایشان نمی داند همچنین برای هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادید برخی از آنها برخی دیگر را با سخنان فریب وسوسه و سکرده و گمراه می سازند اگر پروزگارت می خواست ایشان این کار را پس ایشان را با افتراح هایشان بگذار این وسوسه ها برای آن است تا دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند به آن تمایل پیدا کند و تا به آن را زیگردند و تا آنچه میخواهند خواهند بکنند بگو آیا من به جز خدا حکم دیگری را طلب کنم حال آنکه اوست که کتاب را با تفصیل برای شما فرو فرستاد کسانی که ما و ایشان کتاب را دادیم خوب می که براستی این قرآن مجید از جانب پروردگار تو نازل شده است پس هرگز از جمله شک آوران ما باشه. سخن پروردگار تو به انصاف و راستی تمام شد هیچ تدبی ای برای سخنان او نیست و هم اوشت شنوا و دانا اگر تو روش بس از کسانی را که در روی زمینند پیروی کنی تو را از راه خداوند گمراه می سازند ایشان راه جز گمان تعقیب نمی کنند و ایشان جز تکمین کاری دیگری ندارند واقعا پروردگار تو به حال کسانی که از راه او گمراه می شوند خوب آگاهست و هم او به حال رهیابان خوب آگاهست بنابراین از آن حیوانات بخورید که بر آن در هنگام حلال کردن نام خدا گرفته شده است اگر به آیات او ایمان دارید چرا از چیزهایی نمی خورید که به نام خداوند زده شده است؟ در حالی که چیزهایی که خدا بر شما حرام گردانیده به تفصیل برای شما بیان کرده است مگر در حالی که از آن چارن نداشته باشید اما بسا کسان مردم را به هوای نفسانی خود گمراه می سازند آنکه از علم و خودار باشند بیگمان پروردگار تو هم اوست که به حال تجاوزکاران خوب داناست؟ همه گناهان آشکار و پنهان را تک کنید واقعا آنهایی که مرتکب گناه می شوند و زودی در برابر عمل کرد خود جزا داده دا شوند از آن حیواناتی که بر آن در هنگام حلال کردن اسم خدا گرفتن نشده است نخورید این واقعا گناه است و بیگمان شیطانها هم وارب و دوستان خود وسوسه می کنند تا با شما مجادله کنند اگر از ایشان اطاعت کنید واقعا مشرکید آیا کسی که زنده نبود و ما با او زندگی دادیم و با او روشنایی بخشیدیم که با آن در میان مردم برود یعنی راه خود را بیابد مانند کسی است که در تاریکی ها قرار دارد که از آن هرگز بیرون آمدن نمیتواند و این ترتیب برای کافران کردارشان جلوه داده شده است و به ترتیب ما در هر قریه کلان شوندگان بدکار آن را گماشتیم تا در آنجا دسیسه چینند ولی ایشان جز به خود به کسی دیگری دسیسه نمی چینند ولی ایشان شعور ندارد او وقتی که با ایشان ای از جانب خداوند بیاید می ما هرگز ایمان نمی آوریم تا نشانهی همانند آنچه به پیانبران خدا داده شده است به ما نیز داده شود خداوند جایی را که در آن رسالت خویشرا می نهد بهتر می داند زودی به گنهکاران در پیشگاه خدا به نسبت لسیسهکارییشان رسوایی و عذاب شدید میرسد پس کسی را که خداوند بخواهد هدایت کند سینه او را برای اسلام باز می کند و کسی را که بخواهد گمراه کند سینه او را طور نارام و تنگ می سازد که گویی به با آسمان بالا می رود این شنین خداوند عذاب را بر کسانی که ایمان ندارند می گمانند و این راه پروردگار توست راست حقاق آیات را برای قومی که پند پذیرند و تفصیل بیان کردید برایشان در نظر پروردگارشان خانه با امن می باشد و هم اوست دوستشان سبب اعمال پسندیدهی که انجام می دهند. و ان روزی که خداوند همه ایشان را جمع کند و میگوید ای گروهی شما انسانهای بیچاره را تابع یعنی گمراه‌ ساختی دوستان ایشان از انسانها میگوین پروردگارا ما دیگر بهره ور شدیم و به موعدی که به ما تعیین کرده بودی رسیدیم خداوند میگوید آتش رهایی های را شماست در آنجا همیش به سر میبرید مگر آنکه خداوند خواهد بیگمان پروردگاری تو صاحب حکمت و دارناست به این ترتیب ما بعضی ستمداران را بر بعضی دیگر مسئلت می به سبب اعمالی که مرتکب شده ای گروه جن و انس؟ آیا به شما پیامبرانی از خود شما نیامدند که با شما آیات ما را میخاندن و شما را از روبرو شدن با این روز میترساندن به بخشتن گواهی دادیم و زندگی دونیوی ایشان را فریر دادن و خود گواهی دادند که ایشان کافر بودند این فرستادن پیامبران از سببیست که پروردگار تو ارادن ندارد که باشندگان قریه ها را بخاطر ستمگاریشان در حالی که بیخبر باشند حلاک نماید هر یک از مردم نسبت به اعمالی که انجام میدهند درجاتی دارند و خداوند از اعمالی که انجام میدهند هرگیز بیخبر نیست فروردگاری تو بیمیاز و صاحب رحمت است اگر بخواهد شما را از بین ببرد و بعد از شما را هر کی را بخواهد جانیشین میسازد چنانچه شما را نیز از نسل مطلی دیگری این بیگمان همه چیزهایی که به شما وعده شده است حتما آمده نیست و هرگز شما آجی نمی نمیتوانید یعنی تقدیر خدا را تغییر نمی نمیتوانید بگو ای مردم من هرچی میتوانید بکنید من هم به سهم خود هرچی میتوانم انجام میده هم به سودی خواهید فهمید که سرای آخرت از آنی کیست؟ واقت امر این است که ستمگاران دستگار نمیشوند از آنچه خداوند از کشت و چارپایان آفریده حصهی را به خداوند مقرر داشتند و مطابق با پندار خیش می گفتن این برای خداوند است و این هم برای شریکان ما اما حصه شریکان ایشان به خداوند رسد و آن حصه که برای خداوند تعیین شده است پس آن به شریکانشان میرسند. بد اس آنچه یشان حکم میکند همچنان برای بسیاری از مشتکان شریکانشان کشتن اولادشان را یک عمل شایسته جلوه داده بودند. تا ایشان را تباه کنند و دینشان را بر آنها مشتبه سازند و خداوند می‌خواست ایشان چنین نمی‌کردند. پس ایشان و تهمت‌هایشان را به حال خود بگذارد و به اساس پندار خیش می گویند این چارفایان و تشت ممنوع است و جد کسانی که ما می خواهیم کسی دیگر از آن باید نخورد و چارفایانی هست که پشت آن حرام است یعنی باربری با و اصلای آن جواز ندارد و مواشی آن که بر آنها در هنگام زبح نام خداوند ذکر نمی شود. اینها است بر خداوند و زودی آنها را در برابر این هایشان مجازات می کند و گفتند آنچه در شکم این چهار پایان می باشد یعنی جنین و بچه برای مردان ما اختصاص دارد و به ما حرام است اما اگر مردت اولود شود ایشان مرد و زن در آن شریکند و سودی خداوند ایشان را در برابر این صفتشان که نسبت این احکام را به درو و خداوند میدهند مجازات می کند که او صاحب حکمت و داناست بیگمان جان کار شدن کسانی که اولاد خود را از روی نادانی جاهلانانه کشته اند و آنچرا خداوند به ایشان زیگردانیده به گناه افترا و خداوند خود حرام کرده اند ایشان واقعاً گمراه شده و هرگز راهیاب نبودند و اوست که باقه های چهتردار یعنی درختانی را که برچله استاده می شوند و باغهای بین چتر یعنی درختانی را که با پای خود استاده اند و نیز درخت خرما و کشت را با خوردنی های آن و زیتون و انار را در شکل خود همانند و در مزه خود متفاوت از میوه آنشون بسمر رسد بخورید و حق آن را در روزی که حاصل برداشته می شود ادا کنید و اصراف نکنید حقاق خداوند مصرفان را دوست ندارد از چارپاین باربر و پخ شرفری از آنچه خداون برای شما روزی داده است بخورید و اگامهای شیطان رو پیروی مکنی حقا که او برای شما پشمن ایست هشت جوره حیوانافرید از گوسفند دورس نروماده و از بز دورهس نروماده بیگو آیا خداوند دو را حرام کرده است یا دو مادر را یا چوچهی را که رحیم دو ماده بر آن مشتمل است اگر شما راشگوه هستید به اساس علم به من جواب بوید از شطر دور نر و مادر و از گاو دور اصل نرو مادر بگو آیا خداوند دنر را حرام کرده است یا دو مادر را یا چوچه را که رحم دو مادر بر آن مشکل است آیا وقتی که خداوند به شما چنین حکم را سازر کرد حاضر بودید؟ پس کیست تر از کسی که دروغی را بر خداوند بربندد تا بدیم وسیله مردم را به نادانی گمراه سازد؟ حقا که خداوند مردم ستمگار را رحیاب نمی کند؟ بگو در آنچه با من واحد شده ک گوشت حرامی را که آن را خورنده ای بخوررد نمی یاوم مگر اینکه آن گوشت خودمرده یا خونی ریخته شده یعنی خونی هنگام زبح یا گوشت خوک باشد زیرا آن پاک است یا آن گوشت حیوانی باشد که با گناه فس زدح شده باشد به با این معنا که نام غیر خدا و آن در هنگام زه برده شده باشد اما در این حال نیز اگر کسی مستتر می شود که بدونی سر کشی بدون آن که از حد در از چنین گوشت بخورد پس بگمان پروردگار تو آمرزگار و مهدمان است بر یهودیان هر حیوان ناخنداری یعنی دارای سوم یک پارچه را حرام کردیم و از گاو و گوسفند بر آنها پیه آنها را حرام کردیم مگر آن پیه را که بر پشتشان قرار دارد یا با روده های آنهاست، یا با استخانها مخلوط است این در واقعی است که در برابر سرکشی و به آنها دادیم و بگمان ما راست اگر تو را به دروغ متهم سازند بگو پروردگار شما صاحب رحمت وسیست و, و در عین حال او او از مردم گناهکار بازگشتاندن نمی بزودی آنانی که با خداوند شرک می آورند می اگر خداوند می خواست ما به او شریک نمی آوردیم و نه پدران ما این کار را می و نه هم ما چیزی را حرام می گرگانیدی. کسانی که پیش از ایشان بودند نیز چنین دروغی را گفتند تا اینکه که و ما را چشیدند بگو آیا نزد شما علمی وجود دارد؟ پس آن را برای ما نشان بدهید شما غیر از پندار چیزی را با نمی کنید و بجز دروغ و بج بگو پس خدای راست درید رسال اگر میخواست یقینا شما را را یاب میکرد بگو آن گواهان خیش را که بر این گواهی می دهند که خداوند این را حرام کرده است بیاورید پس اگر ایشان گواهی دادند تو با ایشان گواهی مدید و از هوای نفس کسانی پیروی مکن که آیات ما را دروغ بنداشتند و آنهایی که به آخرت ایمان ندارند و به پروردگار خود دیگران را براور می کند بگو بیاید چیزهایی را که پروردگار شما بر شما حرام کرده است بخوانم اینکه با او هیچ چیزی را شریک نیاوری با مادر و پدر خود نیکویی ورزی اولاد خود را از ترس ناداری مکوشی ما شما و آنها را روزی می دهیم. به فحشا آنچه آشکارا باشد از آنها و آنچه پوشیده باشد نزدیک نشوید نفسی را که خداوند حرام کرده است ما کشید مگر به حق این حکم را خداوند به شما توسیه کرد تا تو باشد که بفهمید و به داره یکیم نزدیک مشوید مگر به شیوهی که بهتر است تا بسین روش خود برسد پیمانه و وزن را با انصاف و به صورت کامل ادا کنید ما بر هیچ کس باری را نمی گذاریم مگر به اندازه توانی او و چون سخن می گویید پس انصاف ورزید اگر چی در باره خیشاوندان باشد و به با پیمان خدا وفاق کنید و به ترتیب با شما توسیه کرد تا باشد که پند پذیر شوید. بگمان این است راه من راه راست پس آن را پیروی کنید و راه های را پیروی مکنید که شما را از راه او دور می سازد و این ترتیب به شما توصیه کرد تا باشد که پرهیزگار شد. سپس به موسی کتاب را دادیم تا بدین وسیله نعمت خیش را بر نیکو کاران تمام کنیم و همه چیزها را تفصیل نماییم و تا هدایت و رحمتی باشد باشد که ایشان به ملاقات پروردگار خیش ایمان آرند. و این کتاب است که ما آن را فرو فرستادیم مبارک است پس آن را پیروی کنید و از خدا بترسید تا با که مورد رحمت قرار گیرید تا نگوید کتاب تنها به دو قوم پیش از ما یهود و نصارا فرستاده شده بود و ما گمان از درس و تدریس ایشان خبر مانده بودیم یا بگوید اگر واقعا کتاب برای ما نازل ما می شد ما ره یادتر از می بودیم واقعا با شما حجتی از جانب پروردگار شما و هدایتی و رحمتی آمده است پس کیست ستمگاهتر از کسی که آیات خداوند را تکذیب کند و از آن رو گرداند و زودی کسانی را که از نشانه های ما رو می گردانند به تبین عذاب سزا می دهیم به سبب آن که اعراض می گردند. آیا انتظار می کشند اینکه فرشتگان پیش ایشان بیایند یا پروردگاری تو بیاید یا بعضی از نشانه های پروردگاری تو بیاید؟ روزی که بعضی نشانه های پروردگاری تو بیاید ایمان کسی که پیشتر به آن اعتقاد نداشته و یا به اساس اعتقاد خیش کاری نیکی انجام نداده سودی ندارد بگو انتظار بکشید ما نیز در انتظاری؟ بگو من کسانی که دین خیش را فراغنده ساختند و گروه گروه شدند، تو را با ایشان هیچ گونه سرو نیست بگو من کار ایشان به خداوند محول است سپس ایشان را به حقیقت همه اعمالی که مرتکب می شوند آگاه می سازد. هر آن که کار شایسته انجام دهد ده مزد آن را ده چند می یابد و هر آنکه که عمل بدی را مرتکب گردد مجازات نمی شود مگر به مثل آن و به ایشان ستم نمی شود. بگو حقا که مرا پروردگارم برای راست رهنمایی کرده است دین استوار ملت ابراهیم حنیف یعنی روگدان از انحرافات و او در زمره مشکان نبود بگو بگو من نماز من مناسک من زندگی من و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است آنکه برای او شریک نیست به این امر شده هم. و من از نخستین مسلمانان بگو آیا غیر از خداون کسی دیگر را به حیث پروردگار بجویم؟ در حالی که او پروردگار همه چیزهاست و هیچ کسی هیچ کاری را نمی کند مگر آنکه که پیامد آن بر خود اوست و هیچ بردارنده باری دیگری را بر نمی دارد سپس بازگشت شما به سوی خداوند است و او شما را به آنچه در آن اختلاف و آگاه می سازد او ذاتی که شما را جانشینان خود در زمین گردانید و بعضی شما را از بعضی دیگر به درجات برتر قرار داد تا شما را در آنچه با شما ارزانی کرده است آزمایش کنند بیگمان پروردگار تو در اعضاف کردن ساریست و بیگمان او واقعا آمرزند و مهربان است